اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم حمیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر حمیم تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم این کتاب از سوی خداوند عزیز و حکیم نازل شده است این نفی السماوات والارض لآیات للمؤمنین بیشک در آسمان ها و زمین نشانه های فراوانی برای مؤمنان وجود دارد وفی خَلْقِكُمْ وَمَا مع ووس دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ اون لقومی و نیز در آفرینش شما و جنبندگانی که در سراسر زمین پراکند ساخته نشانههایی است برای جمعیتی که اهل یقینند. وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا, فأحيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ, آيات لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ در آمد و شد شب و روز و رزق و بارانی که خداوند از آسمان نازل کرده و به وسیله آن زمین را بعد از مردنش حیات بخشیده و همچنین در وزش بادها نشانه های است برای گروهی که اهل تفکرند تیلک آیات اللهی نتلوها علیک بالحق فبی ای حدیث بعد الله و آیاته يؤمنون. اینها آیات خداوند است که ما آن را به حق بر تو تلاوت می اگر آنها به این آیات ایمان نیاورند به کدام سخن بعد از سخن خدا و آیاتش ایمان می آورند ویل لکل افاک اثیم بای بر هر دروغگوی گناهکار یسمع آیات الله تتلا عليه ثم يصر مستكبرا ثم يصر مستكبرا کان لم يسمعها فبشره بعذاب الیم که پیوسته آیات خدا را میشنود که بر او طلبات می شود اما از روی تکبر اصرار بر مخالفت دارد گویی اصلا آن را هیچ نشنیده است چون این کسی را به عذابی دردناک بشارت ده و علم من اياتنا شيئا اتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهین. و هرگاه از بعضی آیات ما آگاه شد آن را به باد استهزامی میگیرد برای آنان عذاب خار کننده ایست مین ورائیهم جهنم و لا یعنی عنهم ما کسبو شیئا ولا لا من دون الله اولیاء و لهم عذاب عظیم و پشت سرشان دوزخ هست و هرگز آنچه را به دست اند آنها را از عذاب الهی رهایی نمی بخشد. و نه اولیایی که غیر از خدا برای خود برگزیدند مایه نجاتشان خواهند بود و عذاب بزرگی برای آنهاست آده هده والذین کفرو بی آیات ربهم لهم عذاب لهم عذاب من این قرآن مایه هدایت است و کسانی که به آیات پروردگارشان کافر شدند عذابی سخت و دردناک دارند الله الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوْ خداوند همان کسی است که دریا را مسخر شما کرد تا کشتیها به فرمانش در آن حرکت کنند و بتوانید از فضل او بهره گیرید و شاید شکر نعمتهایش را به آورید و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الأرض جميع منه إن في ذلك لا لقوم يتفكرون. او، آسمانها و آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است، همه را از سوی خودش مسخر شما ساخته. در این نشانه های مهمی است. برای کسانی که اندیش میکنند. قلیالذین آمنوا یافروالذین لا یرجون ایام الله لیاجزی قوما لیاجزی قوما بما كانوا يكسبون. به مؤملان بگو کسانی را که امید به ایام الله روز رستاخیز ندارند مورد عفو قرار دهند. تا خداوند هر قومی را به اعمالی که انجام می دادند جزا دهد من عمل صالحا فلی نفسی و من اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون هر کس کار شایسته ای به جا آورد برای خود به جا آورده است و کسی که کار بد می کند به زیان خود اوست سپس همه شما به سوی پروردگارتان بازگردانده میشوید ولقد آتینا بنی اسرائیل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمین ما بنی اسرائیل را کتاب و حکومت و نبوت بخشیدیم و از روزی‌های پاکیزه به آنها عطا کردیم و آنان را بر جهانیان و مردم عصر خیش برتری بخشیدیم و آتیناهوم من من الامر فمختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ان ربك يقضي بينهم يوم فيما كانوا فيه يختلفون. و دلایل روشنی از امر نبوت و شریعت در اختیارشان قرار دادیم آنها اختلاف نکردند مگر بعد از علم و آگاهی و این اختلاف به خاطر ستم و برتری جویی آنان بود اما پروردگارت روز قیامت در میان آنها در آنچه اختلاف داشتند داوری می کند. ثم جعلك على شریعت من الامر فاتبعها فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون سپس تو را بر شریعت و آین حقی قرار دادیم. از آن پیروی کن. و از هوس کسانی که آگاهی ندارند پیروی مکن اینهم لن یغنو عنک من الله شیئا و این الظالمین بعضهم اولیاء بعض والله ولی المتقین آنها هرگز نمیتوانند تو را در برابر خداوند بی نیاز کنند و ظالمان یارو یاور یکدیگرند، اما خداوند یارو یاور پرهیزگاران است. پد بسااییم نزی ووحود او و رحمت وود او و این قرآن و شریعت آسمانی و سایل بینایی و مایه هدایت و رحمت است، برای مردمی که به آن یقین دارند. أم حسب الذين جترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء سواء أمحيهم ساء ما يحكمون آیا کسانی که مرتکب بدیها و گناهان شدند گمان کردند که ما آنها را همچون کسانی قرار می دهیم که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند که حیات و مرگشان یکسان باشد چه بد داوری می کنند و خلق الله السماوات والارض بالحق ولی ولی تجزه کل نفس بما ما کسبت و هم لا یظلمون و خداوند آسمان ها و زمین را به حق آفریده است تا هر کس در برابر اعمالی که انجام داده است جزا داده شود و به آنها ستمی نخواهد شد افر ایت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم وَأَضَلَّهُ اللَّهُ على عِلْمٍ وَخَتَمَ على سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ على بَصَرِهِ غِشَاوَةً وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ افلا تَذَكَّرُونَ آیا دیدی کسی را که معبود خود را هوای نفسخیش قرار داده و خداوند او را با آگاهی بر اینکه که شایسته هدایت نیست گمراه ساخته و بر گوش و قلبش مهر زده و بر چشمش پرده افکنده است؟ با این حال چه کسی می تواند غیر از خدا او را هدایت کند؟ آیا متذکر نمی شوید؟ وقالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا یظنون آنها گفتند چیزی جز همین زندگی دنیای ما در کار نیست گروهی از ما میمیرند و گروهی جای آنها را میگیرند و جز طبیعت و روزگار ما را حلاک نمی کند. آنان به این سخن که میگویند علمی ندارند بلکه تنها حد میزنند زنند و اذا تتلا علیم آیاتنا بیناتیم ما کان حجتهم الا ما کان حجتهم الا ان قالوتو کنتم صادقین. و هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خانده می شود دلیلی در برابر آن ندارند جز اینکه میگویند اگر راست میگویید پدران ما را زنده کنید و بیاورید تا گواهی دهند قل الله يحيكم ثم ثم إلى يوم لا ريب فيه ولكن ولكن اكثر الناس لا يعلمون بگو خداوند شما را زنده می کند سپس میمیراند بار دیگر در روز قیامت که در آن تردیدی نیست گردآوری می کند ولی بیشتر مردم نمی دانند. مالکیت و حاکمیت آسمان، ها و زمین برای خداست و آن روز که قیامت برپا شود اهل باطل زیان می‌بینند و ترا کل امته جاثیه کن امته تدعى الى كتابها اليوم تجزون اليوم تجزون ما كنتم تعملون در آن روز هر امتی را می‌بینی که از شدت ترس و وحشت بر زانو نشسته هر امتی به سوی کتابش خوانده می شود و به آنها میگویند امروز جزای را انجام میدادید به شما میدهند. هذا كتابنا انا ما كنتم تعملون این كنا نستنسخ كتاب ماست ما که به حق با شما سخن میگوید ما آنچه را انجام میدادید مینوشتیم فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلک هو الفوز المبين اما کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند پروردگارشان آنها را در رحمت خود وارد می کند این همان پیروزی بزرگ است وان الذين كفروا افلم تكن اياتي تتلى عليكم فاستكبرتم فاستكبرتم و قوما مجرمین اما کسانی که کافر شدند به آنها گفته می مگر آیات من بر شما خوانده نمیشد و شما استکبار کردید و قوم مجرمی بودید و اذا قیل إن وعد الله حق والساعة لا ریب فیها قلتم قلتم ما ندریم الساعت این نظن إلا ظنن و ما نحن بمستیقینین و هلگامی که گفته میشد شد وعده خداوند حق است و در قیامت هیچ شکی نیست شما می ما نمیدانیم قیامت چیست ما تنها گمانی در این باره داریم و به هیچ وجه یقین نداریم و لهم سیئات ما عملو و بهم ما کانو به یستهزئون و بدیهای اعمالشان برای آنان آشکار میشود. و سرانجام آنچه را استهزامی کردند آنها را فرا میگیرد. وقيل اليوم لنا ساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم ومأواكم النار وما لكم من ناصرين به آنها گفته می شود امروز شما را فراموش می کنیم. همان گونه که شما دیدار امروزتان را فراموش کردید و جایگاه شما دوزخ است و هیچ یاوری ندارید. زَعْنِكُمْ أَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ این به خاطر آن است که شما آیات خدا را به مسخره گرفتید و زندگی دنیا شما را فرید داد. امروز نه آنان را از دوزخ بیرون میآورند و نه هیچ گونه عذری از آنها پذیرفته می شود فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمين همد و ستایش مخصوص خداست پروردگار آسمانها و پروردگار زمین و پروردگار همه جهانیان وله بریاء فی السماوات والارم و هو العزیز الحکیم و برای اوست که و عظمت در آسمان ها و زمین و اوست عزیز و حکیم